تاکو خانم تحمل پور عزیز سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه صحبت کردن جلوی دوربین تصویر به شدت کار سختیه شما این توانایی رو نشون دادین از خودتون و بعضی وقتها قبته می‌خورم از اینکه انقدر راحت جلوی دوربین صحبت میکنین انقدر ایده های خوبی دارین ان که همین جوری با همین فرمون این کار رو ادامه بدین بدون حاشیه و بدون اشتباه ان که در مسیر نوآبین الماس تجربه دست بیارین حالا اگر قسمت بود و ما افتخار داشتیم از این تجربیات سال‌های بعد استفاده بکنیم و امیدوارم که اتفاقات خوبی براتون رقم بخوره شما به شدت برای شخص ونده قابل احترام این چون توانایی دارید که هر کسی نداره و این توانایی میتونه که در آینده به شما خیلی کمک کنه براتون عرضی موفقیت میکنم شاد و سرحال و پیروز باشید